آگه صداام ضعیف بود بگید دیگر. ببینید من فکر کنم که صحبت از لودویک ویتکه نشاناین رو بهتره که با یک گزارشی از زندگیش شروع کنیم به واسطه اینکه جلوتر متوجه میشیم که چرا این زندگی نامه مهمه و حالا اگه وقت بشه امشب یه بخشی از این زندگی به وضعیت ادبیات معاصر ما هم مرتبطه که به نظرم میتونیم بهش اشعاره بکنیم و یه موضوع دیگهی که توی این نشست به نظرم باید در موردش صحبت بکنیم اینه که وقتی میگیم نگره های زبانی باید مشخص بکنیم که وقتی ویدکنشتاین از زبان صحبت میکنه منظورش از زبان چیه چون اون موقع خیلی از سوه تفاهمات هم این وسط از بین میره نکته سوم اینه که ویتکنشتاین یه دوره اول داره و یه دوره دوم که خیلی اهمیت داره برای درک و فهم ویتکنشتاین چون همونطور که دکتر منصوری هم فرمودن اصلا نگرش ویتکنشتاین دوره اول یعنی دوره ترکتاتوس و نگرش ویتکنشتاین دوم یعنی دوره پژوهش‌های های فلسفی کاملا با همدیگه متمایزه و نکته جالب توجهی که وجود داره اینه که لودویک بیتکنشتاین در سال 1951 فوت میکنه بر اثر سرطان و این کتاب پژوهش‌های های فلسفیش در سال 1953 تعمدن به خواست خودش دو سال بعد از مرگ ویتکنشتاین منتشر میشه و یه جنجالی رو توی دانشگاه کیمبریج به پا میکنه و اولین کسی که از این واقعا هم خیلی شکه میشه برتران راسل استادشه و این خیلی مهمه که ویتکنشتاین در تمام طول دوره زندگی خودش بیشتر به عنوان فیلسوف تراکتاتوس شناخته میشده که باید تو پارت سوم توضیح بدیم اما وقتی می میره به وسیعت خودش پجوهش های فلسفی منتشر میشه و کل تراکتاتوس رو تقریبا زیر سؤال میبره و فقط تراکتاتوس رو زیر سؤال نمیبره نکته جالب اینه که فرگر رو زیر سؤال میبره مور رو زیر سؤال میبره راسل رو زیر سؤال میبره و مهمتر است همه اینه که حلقه ویان رو هم زیر سؤال میبره یعنی سنت یا ترادیسیانی که توی کیمبریج شکل گرفته در قوضه فلسفه تحلیلی و اینا میخوان در حقیقت در برابر متافیزیک فلسفه نوعی روی کرد پیور و خیلی روشن از زبان رو ازش دفاع بکنن یک نفر از درون خودشون اون هم شاگرد ناوغه راسل کل این پروژه پلغیویان رو به اصطلاح با مرگ خودش و با انتشار پژوهش‌های های فلسفی دو سال بعد از مرگ خودش به اصطلاح دوچاره یک بحرانی میکنه حالا برای اینکه که برسیم به سال 1953 جایی که در باقی های فلسفی منتشر میشه و در واقع میتونیم بگیم آغاز ویتکنشتاین دو بعد از مرگ شروع میشه و نگرش متفاوتش نسبت به زبان و اصلا نسبت به فلسفه در, در این تاریخ و از اینجا به بعد در واقع کلید میخورد. خود لودویگ ویدکنشنان همین در سال 1889 که سال خیلی جالب توجهی خیلی آدما توی این سال به دنیا اومدن که در واقع مهمه سال مهمیه در جایی به دنیا میاد که حالا ما امروز بهش میگیم اتریش ولی در واقع او اتریشی مجارستانی بوده که این سال 1889 مصادفه با سال 1268 شمسی تقریبا دورهی که خیلی از آدم مهم در تاریخ ادبیات محاصر ما مثل نیما، مثل خیلی از چهره هایی که میشناسیم که در حقیقت بعدن نسل دوم انقلاب مشروطه شدن همزمان با این تاریخ دنیا میاد من همینجا یه چیزی داخل پرانتز بگم یه جمعهی به نقل از چارز تیلور که به نظرم حرفیه که شاید خیلی ها با, با اندکی اختلاف معافق باشن و اونم اینه که میگه که سه تا شخصیت یعنی ویتگینشتاین مارتین هایدگر و مرلو پونتی مهمترین فیلسوفان صده بیستم هستند یعنی حالا مثلا ممکنه که بگه من در مورد مرلو پونتی معتقد نیستم یا اختلاف نظر دارم ولی تقریبا یک اجماعی وجود داره که مارتین هایدگر و ویتکنشتاین بیشک جز اون دو ستا فیلسوف یا پنجتا فیلسوف مهم قرن بیستم هست جالبه که تاریخ تولد مارتین هایدگر و تاریخ تولد ویتکنشتاین و تاریخ تولد آدول فیتلر هر سهشون در همین سال 1889 و احتمالا میدونید که ویتکنشتاین در مدرسه همکلاسی مارتین هایدگر بود و برخی پژوهش ها که مثلا یه نمونش یک متفکری در استرالیا انجام داده برای نکته تحکید داره که ویتکنشتاین بود که در مدرسه هیتلر رو با در واقع شوپنهاور آشنا کرد حالا کاری با این نداریم که اینا یه مقدار مطالب جورنالیستی پس از مرگ ویتکنشتاینه اما نکته جالب توجه اینه که ویتکنشتاین هم کلاسی آدولف هیتلره و مارتین هایدگر متفکریه که منتسب به اینه که از تفکراتی که منجر به اون جریانات جنگ جهانی و حزب نازی و یهودی کشی شد دفاع کرده ما داریم در واقع در مورد همزمان که داریم در مورد بیتکنشتاین حرف میزنیم همزمان تو بکراند خیلی خوبه که مورد توجه قرار بدیم هایدگر و هیتلر رو کما اینکه هم هایدگر در دوره حیاتش در مورد ویتگنشتاین اصرار نظر کرده و هم ویتگنشتاین در مورد هایدیگر اصرار نظر کرده و اینا کارهای همدیگر رو هم خونده بودن. و نکته جالب توجه دیگه اینه که یکیشون متعلق به سنت فلسفه اروپای غاره یعنی هایدگر و یکیشون متعلق به فلسفه تحلیلی یعنی ویتگنشتاین بود. به طرز عجیبی این دو یه جاهایی به همدیگه میرسن و نزدیک میشن مشخصا بعد از 1953 یعنی مرگ ویتکنشتاین و رساله پژوهش‌های های فلسفی بعد در سال 1903 زمانی که در واقع ویتکنشتاین 14 سالش بیشتر نبود تحصیلات خودشو یعنی هم دوره همکلاسی شدنش با هیتلره بعد تو سال 1908، زمانی که 19 سالش بود، وارد دانشگاه میشه که مهندسی مکانیک به خونه، خیلی هم دانشوی مستعدی بوده. حدوداً 3-4 سال بعد، تقریباً در سال 1911 زمانی که 22 ساله بوده، تحصیلات خودشو تو حوزه هوانوردی شروع میکنه و میخواد که بره و... در واقع تو حوزه هوانوردی مطالعه کنی که این سال سال خیلی مهمیه یعنی سال 1911 زمانی که ویتکنشتاین 22 23 سالشه و اینجا اولین ملاقاتش رو با فریدیه یکی از فیلسوفان تراز اول فلسفه تحلیلی و زبان انجام میده و اون تو اون دیدار علاقمند میشه چه جدا بشه از اون رشته‌ی هوانوردی و بیاد در کنار فرگه کار بکنه ولی فرگه اون رو نمیپذیره به عنوان دانشوی خودش ولی بهش پیشنهاد میکنه میگه که به نظرم بهتره که بری با بهتران راسل کار بکنی و این زمینه آشنایی لودویک ویتگنشتاین که از رشته مهندسی اومده و میخواد بره به سمت فلسفه با بهتران راسل و این نکته رو همینجا بگم که کتاب تراکتاتوس این کتاب خیلی تحت تأثیر اندیشه های یعنی کلی پجروهش ها انجام شده در مورد این که ویتکنشتاین متأثر از فرگه این کتاب رو نوشته. بعد همزمان با شروع جنگ جهانی اول سال 1911، 1912 ویدکنشتاین اولین یاد داشتای خودش رو در مورد منطق می نویسه بعد توی دو سال بعد داوطلب جنگ میشه سال 1914 توی 25 سالگی میره به جنگ و اونجا به اسارت روسها در میاد چهار سال توی بردوگاه ایتالیایی ها تا سال 1918 که پایان جنگ جهانی اوله در بازداشت بوده و همون دوره اولین خودش خودشو برای نگارش کتاب تراکتاتوس انجام میده بعد در حقیقت در همون سال وقتی این کار مورد توجه واقع میشه یعنی تراکتاتوس اونجا کلهم اجمعین بحث بیتکنشتاین اینه که که نظریه تصویری یا پیکچر تئوریش رو مطرح میکنه بر این پایه استوار شده که زبان باید بتواند این آن چیزی که در جهان هست رو بازتاب بده و اون جمعه هم که دکتر منصوری بهش اشاره کردن یعنی این که در مورد چیزی که نمیتونیم حرف بزنیم باید در موردش سکوت بکنیم در واقع بیتکنشتاین میخواد در تراکیداتوس تلاش بکنه که یک رابطه اینی و یک رابطه یک به یک بین زبان و جهان برقرار کنه مثال هایی هم که حالا توی اون سال ها بر همین استواره که زبان اینیت بیرون رو یعنی آن چیزی که در بیرون اتفاق می رو و انتقال می‌ده، حتی توی یکی از مواعظش این موضوع رو پیش می‌کشه که مثلا شما وقتی می‌گید که طول پارچه مثلا دو متره شما این پارچه رو می بینید، اما هیچ تصویری از اون یا هیچ محتوی از اون طول ندارید این طول چیزیه که در واقع توی اون واقعیت بیرونی قایبه به یه معنا او داره تلاش میکنه که رابطه یک به یکی برقرار بکنه بین زبان و واقعیت بیرونی بعد توی این همین سالهای 1000 926 بعد از اینکه که ترکتاتوس رو کامل میکنه و در واقع تحصیلاتش هم در کمبریج به پایان میرسه تصمیم میگه بره توی یه روستای محلمی کنه چون یه تصوری داره که دیگه فلسفه اصلا با ترکتاتوس تمام شده و دیگه نیازی نیست چیز خاصی گفته بشه و بعد اونجا بابت تنبیه یکی از دانش آموزان که انجام میده دوباره بر میگرده به در حقیقت شعر یه دوره‌ای به شدت افسورده میشه یه حالا در مورد دلایل افسردگیش میشه حرفای زیادی زد ولی همونطوری که حالا شما هم به اشاره کردید پدر ویتگنشتاین یعنی اوتو کلمنت ویتگنشتاین که در سال 1913 در واو فوت میکنه یکی از سرمایه‌دارای بزرگ حوزه فولاد و در حقیقت یکی از سروتمندتری مردان اروپاست یعنی به طوره که تا اواخر سالهای 1880 یعنی زمان تولد ویتکنشتاین او تقریبا دومین مرد ثروتمند امپراتوری اتریش و مجارستانه منطقه میدونید که مثلا سالهای 1920 تا 1930 همزمان شد با اون بحران اقتصادی که در اروپا اتفاق افتاد و سقوط در واقع وال استریت سهام ها و در واقع بحران اقتصادی که به وجود اومد خب این موضوع روی خانواده بیتکنشتاین هم اثر گذاشت و اونا خیلی ثروتشون از دست دادن ولی تا سال 1938 یعنی 8 سال بعد از رکود اقتصادی بزرگی که توی اروپا اتفاق افتاد هنوز در واقع خانواده بیتکنشتاین بیش از 14-15 تا امارت بزرگ فقط در ویان داشتن یعنی خیلی خانواده سروتمندی بودن و جالب اینه که خود شخصیت بیتکنشتاین خیلی درگیر این ثروت خانوادگی نبود و اومده بود که پربنده فلسفه رو در واقع تعین تکلیف کنه من اینو از یه در واقع استادی می شنیدم که می که حتی وقتی ترکتاتوس رو می نویسه این رو میندازه روی میز راسل و بهش میگه که این پایان فلسفه است و در حقیقت دیگه بعد از این من کاری ندارم الان می شما اینو بپذیرید می خوایدم نپذیرید که, که راسل شروع میکنه روی این کتاب کار میکنه و خود راسل هم رو یک نابغه بزرگ می نامه و این کتاب براش خیلی مهم بوده و سالها با این کتاب ویتکنشتان کار میکنه تا بعد وقتی بعد مرگ ویتکنشتان پژوهش‌های های فلسفی بیرون میاد برای راستد این موضوع تحملش در واقع خیلی سخت بوده و باورش مشکل بوده توی این دوره که ویتکنشتان ببرانهای اقتصادی اتفاق افتاده و جنگ جهانی اول به پایان رسیده او برای یک دوره درمانی میره به ویان و اونجا با یک شخصیتی آشنا میشه به نام فرانک رمزی که از دانشجویان کمبریج بوده و متاسفانه در 26 سالگیشون فوت میکنه در سال 1930 خود ویتگنشتاین توی همون مقدمه های فلسفی میگه که من ایده عبور از تراکتاتوس رو با نقدای فرانک رمزی شروع کردم و همین فرانک رمزی بود که ویتکینشتاین رو وادار میکنه که بیاد برگرده به کمبریج و اون در واقع در سال 1939 که تقریبا همزمان با جنگ جهانی دوم برمیگرده به کمبریج و به عنوان استاد توی اون دانشگاه منصوب میشه و کرسی استادی پیدا میکنه اینجا ویتکنشتاین 50 سالشه یعنی از تراکتاتوس تا 1939 که او در کمبریج استخدام میشه و یه مرد 50 ساله از تحولات زیادی اتفاق افتاده و این تحولات از جمله اینکه خب هیتلر اومده خودش تحولاتی توی فکرش اتفاق افتاده و شروع میکنه به کار در دانشگاه کمبریج و اونجاست که یه سری رساله رو داره که معروفه به دفترهای آبی و دفترهای قهوهی که اینها رو برای دانشویان خاص خودش تدریس میکرده که همون چیزهاییه که توی پژوهش‌های فلسفی تو سال 1953 همه رو شکم میکنه و توی اون دوره ویتکننشتاین وارد کیبرلیج شده، اما دیگه ویتیکینشناین تراکوس نیست داشت. هر چندند هنوز به نظریه تصویری زبان اعتقاد داره و هنوز در واقع اون پروژه خودش رو کامل نکرده اما کبریج کسی رو استخدام کرده که فکر میکنه که او داره ادامه سنت حلقه ویان ادامه سنت فری مور و راسل رو داره ادامه میده. یعنی کسی که میخواد یک رابطه نعل به نل و عین به اینی بین جهان و زبان برقرار بکنه اما در واقع بید که نشتاین داره توی کیمبریج با همون دفترهای آبی و قهوهیش که برای دانشجویان خاصشون رو تدریس میکنه داره زد سنت کیمبریج عمل میکنه به طوری که تقریبا چند سال یا ده سال 1938 وارد کمبریج میشه سال 1947 تو یک جلسه ای با پوپر که یکی از فیلسوفان مهم در واقع لیبرالیس و اون سنت ساکسونه تو یک جلسه ای به یه مجادله خیلی جدی برمیخورن که لابد چنیدید که همون ماجرای سیخ بخاری ک</thead> براش مقالات و کتاب هایی نوشته میشه که اونجا پوپر این ایراد رو وارد میکنه که به ویتگنشتاین که فلسفه معما نیست و فلسفه معادله ریاضی نیست بلکه فلسفه مسائل جدی داره و اونا با یک تنشی از همدیگه جدا میشن و تقریبا بعد از اون جلسه که احتمالاً با سال 1946 باشه تولس توی سال 1947 یعنی زمانی که ویتگنش تا اینیس 20... 58 سالشه از کیمبریج استعفا میده و همزمان با این استعفا وقتی به نامه‌هاش تو اون دوره نگاه میکنیم که برای دوستانش مینویسه تنفر خودشو از فضای کیمبریج اعلام میکنیم میگه فضای اونجا برای من به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و اصلا پیش از بازنشستگی خودش از اونجا استعفا میده و به سرعت هم متوجه میشه که دچار سرطان شده و این عاملم بر استفاش تاثیر میذاره و شروع میکنه دیگه تا سال 1951 که در واقع فوت میکنه روی پجروهش های فلسفی کار میکنه و پجروهش های فلسفی که دو سال بعد منتشر میشه و کمبریج رو به رو حوا میبره و جنجالی به پا میکنه اساسا روی این وضعیت شکل گرفته که زبان هیچ رابطه ای با در واقع بیرون نداره و زبان تنها و تنها به واسطه استعمالشه که معنا پیدا میکنه و این خیلی حرف مهمی بود یعنی بید که نشتا که توی یک منطق ریاضی و پوزیتیویستی حلقه ویان به دنبال رابطه یک به یک زبان و جهان بود و داشت بخشی از سیستم در واقع آموزشی و بخشی از سنته که این اینجا داره یک نظریه بسیار متفاوتی رو بیان میکنه که وقتی ما داریم از زبان صحبت میکنیم زبان فقط با کاربردشه که معنا پیدا میکنه یعنی اگر کاربرد زبان تغییر بکنه معنا زبان هم تغییر میکنه در این حال تو همین کتاب هست که گیم لنگویج یا همون بحث بازی های زبانی رو مطرح میکنه که هر حوزهی برپایه بازی های زبانی که توی اون حوزه اتفاق پیدا میکنه معنا پیدا میکنه برای همینه که ما نمیتوانیم با زبان علم در مورد الهیات حرف بزنیم با زبان الهیات در واقع به زبان علم سخن بگیم و به نوعی،, نوعی ترازی و در واقع توازی ایجاد میکنه بین آن چیزی که زبان شاعرانه است و زبان علمیه یعنی تمام اون تلاش هایی که در حلقه ویانداش انجام می شد تا نجات بدن فلسفه را از دام متافیزیک و مفاهیم در واقع ذهنی ویتکنشتاین در واقع به عنوان یک فیلسوف تحلیلی کاری رو میکنه که به یه تعبیر دیگه ای هایدگیر هم در مفهوم دازاین داره اون کار میکنه به این معنا که اونجا هایدگیر میگه که دازاین در حستی زندگی میکنه و حستیش در واقع زیستش از اون حستیش نشعت میگیره و ویتکنشتاین هم اینجا داره به تعبیری میگه که زیست اجتماعی ما من زنگ زد. زیست اجتماعی ما و استفاده ما صدا داری؟ الان صدا هست؟ بله الان هست خوبه چند ثانیه فقط کاره تل، تلفون هم زنگ اینجا بیت پینشتان این میخواد بگه زبان امری اجتماعی اصلا یعنی اه اه اینطور نیست که ما چیز ذاتی برای زبان قائل باشیم یا فکر کنیم که یه رابطه یه یک به یکی بین جهان و زبان برقرار و به این معنا و به این معنا ویتکنناین به همراه هایدگر کلید زدند در واقع یا آغاز کردند، مسیری رو که بعد از اون جنبش های و در واقع مطالعات فرهنگی در دنیا شروع شد به اصطلاح میخوام بگم که اون چیزی که توی قرن بیستم قرار بود فلسفه رو به این, مس... به این مسیر هدایت بکنه تا تمام اون تلاش هایی که صورت گرفته بود تا بتونن که فلسفه رو نزدیک به علم بکنن و به این ترتیب بسیاری از بحران هایی که کشف حقیقت و واقعیت رو دوچار مشکل میکرد به نوعی حل فصل بکنن توسط این دوتا متفکر یعنی هایدگیر و ویتکنشتاین که به یه،, به یه شکلی به همدیگه میرسن در پایان عمر و هم این نقل قول از ویتکنشتاین موجوده که میگه من هستی و زمان هایدگیر رو درک کردم و اون رو اثر قابل در واقع اهمیتی میدونه و هم هایدگیل که در درس گفتارهاش به دوره دوم بیتکنشتاین میپردازه در حقیقت اینا همدیگر رو از دو تا سنت فکری متفاوت جالبه توجه اینه که پوشش میدن و به همدیگه نزدیک میشن و در پایان این که این موضوع اتفاقا منجر به این میشه که دیگه ما بعد از ویچک اصلاً اصلا اون سنت فلسفه تحلیلی که اون چنان خودش رو داشت از متافیزیک و مسائل فلسفه اروپای غاره جدا می کرد دیگه اون تمایزی که تا 1953 برش قایل بود دیگه بعد از اون هیچ وقت نتونست تا همین لحظه به اون وضعیت برگرده و این اندیشه ویتکنشتان که به یه شکل دیگه توی هایدگه با هولدرلین باز میگرده به زبان شاعرانه یک اتفاق بسیار نادر و مهم می رو در تاریخ قرن بیستون رقم زدن و اون هم این بود که بیان که شاعران و در واقع ادبا به از زبان شعر دفاع بکنن دو تا از ممتازترین فیلسوفان قرن 20 یا بهتره بگیم بزرگترین فیلسوفان قرن 20 در نهایت در پایان پروژه فکریشون به این نقطه رسیدن که شما وقتی دارید از سخن شاعران سخن میگید چندان نمیتونید اون رو ذیل چیزی به نام سخن آلمانه یا علمی قرار بدید این این لحظه لحظه بنیادینی بود که فلسفه به ادبیات داشت نزدیک میشه یعنی میتونم بگم که در طول تاریخ روند حرکت فلسفه از جایی که افلاتون میگه شاعران رو از در شهر من بیرون بکنید تا این لحظه‌ای که محل ظهور آیدگر و بیت ما تقریبا به سختی میتونیم دوره رو پیدا بکنیم که هنر زیبایی شناسی شعر داستان به فلسفیدن و اندیشیدن نزدیک بشه اما دقیقا دو تا از فیلسفان بزرگ این قرآن نتایج و پیامت های فلسفیشون تولید آفرینش در کنار سخن آلمانه بود و از اینجا بود که اصلا یک خیش آوندی و نشست و برخواستی بین سخن فلسفی و سخن ادبی و هنری به وجود اومد برای به این معنا که مثلا بعد از این دوران بود که ما می‌بینیم که مثلا رولان بارت میگه که من تلاش میکنم که توی فلسفم روایت کنم و داستان بنویسم و ژاک دریدا به وجود میاد و خیلی از متفکرینی که اساساً قائل به تمایز بین سخن فلسفی و سخن ادبی نبودن بلکه ادبیات در یک ساحت هایی به فلسفه نزدیک می شود و فلسفه در یک ساحت هایی به ادبیات نزدیک می شود اون چیزی که امروز ما به راحتی و تقریباً برامون چندان عجیب نیست که بگیم که فلسفه هم و علم هم یک روایت مثل داستان و این سطح از نصفی گرایی در این فضاقه وجود بیاد تا قبل از ظهور و های دیگه به این سادگی قابل تفکیک نبود اونم در فضای دنیای جدیدی که بیش از هر دوره ای علم رو ستایش میکرد و میپرسید به این معنام خوام بگم که تخبولی که ویتکنشنان در فلسفه ایجاد میکنه اون هم از یک سنت خیلی خیلی پوزیتیوی مثل فلسفه تحلیلی و حلقه بیان در نهایت فضایی رو ایجاد کرد که یک گفتگوی بین زبان ادبی و زبان فلسفه یا روایت فلسفه و روایت ادبیات به وجود بیاد. حالا برای این پارت کافی باشه مرسی. بله سپاسگزارم. حالا همونطوری که شما فرمودید دوستان دیگه مثل دکتر منصوری و دوستان دیگه تو اتاق هستن که ممکنه چیزایی رو بدونن که من ندونم. طبیعتاً بیتکنشتن ویتگنشتاین جزو اون فیلسوفانیه که اونقدر شاره و نظریه پرداز و بحث‌های متفاوت در موردش وجود داره که خب طبیعتاً نمیشه همه ابعادش رو به دقت هم معین کرد منتاها یه چیزی رو فقط بگم که گفتن دکتر منصوری که آیا آثارش به فارسی ترجمه شده بله یه خود ترجمه تراکتاتوس یا همون TLP توسط میر شمس دین عدیب سلطانی به فارسی ترجمه شده و کتاب در واقع پجوهش های فلسفیشون هم که آقای فریدون فاطمی ترجمه کرده من شنیدم که ترجمه های, ترجمه های سروش دبا و ترجمه های دیگه هم هستش ها اینجا حالا بحث ترجمه های فارسی هم مطرح شد شاید دونستن این نکته هم خالی از لطف نباشه چون فکر میکنم بعدا میتونیم توی اتاقهایی در ادبیات در مورد این موضوع رو بحث بکنیم چون من تو همین کتاب زای سای 48 به این موضوعی که الان میخوام بگم اشاره کردم که البته اونجا بحثم یه چیز دیگه بود ولی کلن اولین باری که ما تو زبان فارسی اسم لودیک ویتکنشتاین رو میبینیم برمی گرده به سال 1328 که خوشنگ ایرانی توی مقاله لوجستیک استفاده میکنه از درواقع تحولات منطقه جدید رو توضیح میده. اونجا در کنار مور و راسل و چند نفر دیگه فرگه اسم ویتکنشتاینو هم میاره این سال یعنی سال 1328 دقیقا همزمان با در واقع استفای ویتکنشتاین از دانشگاه که این بریج یعنی دو سال قبلش در سال 1947 استفا میده و یه مقداری ما در زبان فارسی دیر با مسائلی که ویتکنشتاین مطرح میکرد آشنا شدیم هرچند به نظر من اونجا ایرانی در ترجمه این کار این مقاله که اسم بید که نشنایینو میاره به نظرم میرسه که با یه سری مسائل آشنا بوده چون اون تحبولاتی هم که بعدا تو شعر ما ما اتفاق میافته خودش جالبه توجهه یه نکته دیگه هم که حالا خب من خودم چیز نیستم در موردش یعنی خیلی آشنا با این به معنی دقیقه کلمه نیستم و دیگه آقای دکتر مهتی هایری یزدی یه بحثی رو دارن که آقای آخوند خراسانی که از علمای صدر مشروطه بودن توی یکی از کتابهای خودشون که اسمشو الان فراموش کردم اونجا اشاره می بر این موضوع که من هر چی تلاش کردم که ببینم چه تفاوتی بین اون بحث نظریه استعمالی آخوند, و آخوند خراسانی و نظریه دوم بیتکنشتانی وجود داره تفاوتی رو ندیدم البته طبیعتاً آخوند خراسانی که توی تقریباً سالهای 1298 فوت میکنه طبیعتاً ویدکی نمیشناخته اینو از این بابت نگفتم که ایشون فضل تقدم داشته ولی خب اینم جالب توجه بود که بعداً خب این موضوعات هم مطرح شد که حالا جالب توجهی که ما یک مراجعهی هم بکنیم با این سنت ها و ببینیم که خب اونجاها چه مباحثی مطرح شده و چه نکاتی در واقع بیان شد منطقه در مورد ویدکی اول که در حقیقت ایشون بحثش اینه که زبان منعکس کننده ساختار جهانه و اون چیزی که در جهان اتفاق میفته زبان میتونه اونو باستاب بده و همونطوری که گفتم این مدعاییه که هم سنت کیمبریج داره دنبال میکنه و هم در حقیقت فیلسوفان فلسفه تحلیلی مثل راسل، فرگه و اصلا این نظریه پیکچر تئوری یا نظریه تصویر که جهان ما و زبان ما یگانه است و زبان داره باستا و همونو میده که فکر میکنم پا، رساله پایان نامه روی این موضوع متمرکز بود عمده مباحثش همون حرفاییه که فریگه داره میزنه یعنی این یه سنته توی فلسفه تحریری حقیبیان و گیمبریچی اما اون چیزی که بعداً اتفاق می و در سال 1945 پجویش های فلسفی نوشته میشه و تا سال 1953 یه چیزی دردود 13 سال یعنی دو سال بعد از مرگ ویتکنشتاین متوقف میمونه این موضوع اینکه بحث شد که آیا او تعمد داشته که خب بله مشخصه که دوباره هم تلاش کرده بود این کار رو چاپ بکنه ولی احتمالا از این جهت که فکر می‌کرده این کتاب به شدت در واقع سر صدا بکنه توی که و یا خیلی مخالفت ها رو بربی ترجیح میده که اونو تو همون دفاتر آبی و قهوه‌ایش توی دانشگاه درس بده و مطرحش نکنه یه نکته جالب توجهی که وجود داره اینه که بیتکینشنان که تو سال 1924 با فرانک رمزی آشنا میشه و او اولین بار نقد در واقع تراکتاتوس رو شروع میکنه توی اون فاصله سالهای 1924 20 در در تا 1935 که آروم آروم ما تحولاتی رو در اندیشه ویتکنشتاین میبینیم اما مخفی خیلی اینا رو بروز نمیده علاوه بر این که مصادف شده با دوتا جنگ جهانی علاوه بر این که تو سال 1921 انشتن جایزه نوبل رو برای نظریه نسبیت گرفته به نظر نظرم مهمه همزمان اون سالها با انتشار سه چهار تا کار مهمم در ادبیات از جمله جویس هم بالاخره به اون سنت انگلیسی نزدیک بود م... آثار مهم جویس از جمله مثلا چهره هنرمنده چهره مرد هنرمند در جوانی گشتونه کام سال 1914 منتشر میشه بعد آثار دیگرش اش مسخ کافکا منتشر میشه اون فضا و بستری هم که توی اون دنیای ادبیات هم اتفاق میفته حالا قطعا نه به صورت مستقیم ولی بالاخره در و به صورت غیر مستقیم متاثر توی این نکته که ویتکنشتاین به این موضوع فکر بکنه که و به این نظریه فوقلاد رادیکال برسه تا جایی که بیتکنشتاین در واقع توی پژوهش‌های فلسفی میخواد بگه که هیچ اعتقادی اقلانی <jeu> نیست یعنی <تصف> اساساً این سلطه علمباوری که میخواد اقلانیت رو در انحصار خودش قرار بده و این اتفاقی بود که با کانت شروع شده بود او میخواست عقل رو ببره توی محدوده‌ای که نه زیبایی شناسی اونجا باشه نه به دین بلکه ما با یک عقل خالص در واقع کاملی که خودشو از تمام بارهای خودش سبک کرده و فقط میخواد بیاندیش روبروی رویم بعد اون سنت های پوزیتیویستی و علمگرایی و تجربه گرایی داره اینو رو میکنه و وقتی دی که توی که این بریج داره به استادی من سوپ شده در سال ۱۳ و39 این فضضا به قوج تکامل خودش رسیده اینجا داخل پرانتز بگم که من توی مثلا این سال ها میدیدم حالا مثلا تو همین فضاهای مثل کلاب هاست شما مثلا می بینید مباحثی شک می‌گیره بین کسانی که مثلا آتیستن یا تکامل با مثلا در نقد اندیشه های دینی یا برعکس ویتکنشتاین توی ویتکنشتاین دوم نه تنها از این فضا بیرون میاد از این فضای علم باور و سلطه این که عقلانیت متعلق به علمه و ما باید این رو در واقع چنان محدودش بکنیم که هیچ چیز غیر خالصی بهش وارد نشه این مسئله رو مطرح میکنه که هیچ اعتقادی عقلانی به اون معنای پیور و خالصش نیست. بلکه ما به جای این دعوای تاریخی اینکه چه چیزی عقلانیست تجربی است یا مثلا مشاهده پذیره، باید اینو جایگزینش بکنیم که همه این حوزه‌ها نوعی بازی‌های هست یعنی ما اصلاً انسان چیزی به غیر از زبان نیست. و حتی جهانی که داریم ازش صحبت میکنیم همان زبان ماست دیگه و اون جملهش که در واقع گستره جهانی یک آدم رو زبانش تعیین میکنه این حرف تو سال 1939 خیلی حرف در واقع انقلابی و بنیادینیه کاری ندارم از 1950 به بعد اون جریان پست مدرن ها و تحولاتی که از 1960 با پسا ساختارگراه ها اتفاق افتاد ما این درک رو پیدا کردیم که تا چه اندازه موجوداتی در انحصار زبانمون هستیم اما این حرف توی سالهای 1925 تا 161902 مثلا 50 یک سال قبل مرگش حرف خیلی متفاوت و خیلی رادیکالی در واقع به حساب میاد از این با. که در حقیقت ویتکنشتاین میخواد اون سلطه غرور در واقع عجیب و غریبی که علم به واسطه تجربی بودن و عقلانی بودن از آن خودش کرده و این انحصار رو بگیره و اتفاقا اینو معطوف بکنه به زبان و میدونید دیگه بعد از هایدگر و ویتکنشتاینه که یه سیلی از مطالعاتی که با جنبش ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی شک میگیره بر پایه لنگویج بیس یا زبانمهوری توی قسطور شناسی، توی ادبیات توی تاریخ و توی مثلا مطالعات فرهنگی شروع میشه یعنی به اصطلاح ما موجودیتمون معتوف به زبانمون و جهان ما رو زبان ما میسازه و هر زبانی یک بازیهای زبانی داره و این بازیهای زبانی توی یک اجتماعهایی ساخته میشه و این اجتماعهای فکری که حالا ما یه جا اسمش میذاریم علم یه جا میذاریم ادبیات یه جا میذاریم تاریخ اینا الزامن نسبت به هم برتری ندارن که یکیشون بگه من عقلانی ترم یا من خیلی مثلا درجه یک ترم و در حقیقت مثلا گفتمانهای مثل هنر یا ادبیات رو در زیل اون قرار بدن بلکه اینها در توازی همدیگه اشکال مختلف تجلیه های زبان هستند و ما در واقع آن گونه می اندیشیم و آن گونه می فهمیم که زبانمون به ما اجازه میده. اگر بخوام تو همون لاجیک ویتکنشتاین دوم این موضوع رو یه مقدار رادیکال تر و اگزاجر تر بکنم، اینه که مثلا ما می بینیم امروز توی ایران ما بحث از تجدد و سنت می کنیم. ولی در واقع به تعبیر جاک دریدا ما داریم در مورد سنت توی یه گیم لنگویج مدرن صحبت می‌کنیم. این،, این یه بحرانه ببینید وقتی میشل فکو کتاب تاریخ جنون رو نوشت جاک دریدا یک نقدی نوشت بر استاد خودش که همون فکو به حساب اومد و اونجا توی اون نقد گفتش که استاد شما میخوایی که با زبان عقل در مورد جنون صحبت بکنی و این شاید جدی ترین نقدی بود که به تاریخ جنون فکومتره می شد. از این منظر که فکو داشت از الزامات و ملزوماتی از زبان استفاده می کرد که جنون اونطوری دنیا رو نمی بینه و نمیفهمه. و این تنینی بود که نشدنی داشت مشخصه. تنینی هایدگری داشت. حرف فهم خلاصه کنم اینه که ما امروز اگه بخوایم به بیتکننش رو به درواقع انتهای منطقی خودش ببریم توی مجادلاتی که مثلا بین آتئیست ها و مثلا خدا باوران یا بین مثلا تجدد باوران و سنت باوران شکل میگیره بیتکننشن اینطوری فکر می کرد که شما فقط، به واسطه اون جهان زبانی که بر خودت ساختی امکان تسلط داری چون این واژگان و این فرماسیون از زبان داره این شرایط و منطقی نشون میده و ویدکنشتاین مثل کانت مثل یک کسی مثل هیون رو پشت سرش داشت که اصلا بحث میکرد که دنیای بیرون ما توش هیچ رابطه علی و معلولی نیست ما رابطه علی و معلولی رو سوار داریم میکنیم بر جهان بعد انقدر این بازی رو دیگه جدی گرفتیم اومدیم زیل علم باوری به یک فربگی رسیدیم که هر گفتمانی که میخواد صحبت بکنه بهش میگیم که خب مثلا تو اینجا شواهد چیه؟ چطوری خودتو مثلا مستدل میکنی چطوری؟ در واقع به صورت تجربی اینو به من نشونید در حالی که اصطلاحاتی مثل تجربی بودن عقلانی بودن مغالطه نکردن و, و همه اینا مال یک گیم لنگویجییه که از اینقدر در حوزه علم کاربورد داشته و اونقدر اونجا پاپولار و معروف شده بعد سرایت کرده به حوزه‌های دیگه‌ای به طوری که ما در حوزه های دیگه هم بر خودمون این فرض رو میبینیم که همباره این قواعد رایت بکنیم ولی به به معنایی ما تا زمانی که خیشابند زبان یک ترادسیون یک سنت نشیم به معنای ویدکنشتانی اصلا امکان گفتگو با هاشون نداریم یعنی شما برای اینکه بتونید بفهمید شعر چیست و چه کار بردی داره نمیتونید توی فاینال لنگویجه توی در واقع زبان نهایی علم زیست بکنید بعد بیاید در مورد سخن شاهران صحبت کنید من به نظرم چه در لهش صحبت کنید چه علیهش به این معنا بی‌معنیه کما اینکه شما نمیتونید در مورد سنت صحبت بکنید پیش از اینکه خیشاوند زبان سنت باشید این خیشاوندی با زبان نیازمند یک تجربه زیسته وجودی با زبانه نه با سنت بعضی میگن میگم ما دیگه رابطه همونو با سنت از دست دادیم بله از دست دادیم ولی مسئله موضوع اون رابطه در واقع زبانیه که باید برقرار بشه و وقتی این برقرار اتفاق نمیفته در واقع ما سنت رو به یک امری فرودستانه بدل میکنیم ادبیات رو به امری فرودستانه بدل می‌کنیم، الهیات رو به امری فرودستانه بدل می‌کنیم. و این فرودستی امکان گفتگو رو نمیده بلکه شرایط سلطه یک نظام دانایی و زبانی رو بر نظامهای دانایی دیگه ایجاد میکنیم سپاس گذار. آره. ببخشید این جمله خیلی جمله خوبی بود سینا جان گفتید چون من یادم رفته بود فقط اینو بگم من واقعیتش هنوز نمیتونم بر پایه مستنداتی که از خود ویتکنشتاین مونده نمفصلینش بگم که ویتکنشتاین دوم انقطاع کامل ویتکنشتاین اول همین جمله که در واقع ازشونم میخونید در واقع استمرار برخی از اون مفاهمی که ویتکینشتاین اول داره مطرح میکنه تکامل پیدا میکنه به نظرم تو ویتکینشتاین دوم و البته بعضیاش به گفته خودش اشتباهات فاحشی که کنار گذاشته میشه ولی واقعیتش این مهمه که ما در واقع خودش هم بحثی داره تحت اموان نظریه خیشاوندی با البته با توضیحاتی متفاوت که این خیشاوندی در زبان اتفاق نیفته اساساً نه درکی اتفاق میفته نه گفتگو و جمله آخرم به بخش طولانی صحبت کردم اینه که امثال بیتکنشتان میخوان این سلطه در واقع یک طرفه گفتمانهای علمی در واقع پوزیتیو معاصر رو به چالش بکشن و اساساً مفردی ایجاد بکنن برای اینکه اشکال دیگر سخن امکان بروز و ظهور داشته همزن بزرگتون که خیلی سوال خوبی بوده احمد جان من طبیعتا پاسخی که خواهم داد شاید همه در واقع سوال شما رو دربر نگیره ولی شاید بخشیش رو دربر بگیره شاید این اشتباه توی توضیحات من موجود بود به نظرم باید در این مورد احتیاط کنیم که وید کنشتاین نمیخواست بر علم باوری بشوره او به هر حال داره از یه ترادسیون یا سنتی میاد که هم متعلق به فلسفه تحلیلی و هم حلقه ویان و هم در واقع دانشگاه کمبریج که در واقع داره در مورد اصلا خودش میگه مسئله اساسی من ریاضیاته و داره در مورد علم و دنیای جدید میاندیشه این که حالا این توضیحاتی که من دادم بعد 1950 اتفاق میفته پیامت های اون چیزیه که در 1953 تحت اونو پجوهش های فلسفی منتشر میشه ولی یه نکته ای رو میگم این خیلی مهمه شاید کمک بکنه که در واقع یه بخشی از این سوال مهم رو پوشه شد این کلن ما اول باید بگیم که جهان جهان چیست در دوران شام مدرن یک تلقی سرسری اگر بخوایم از تعریف جهان ارائه بدیم مجموعه اشیاء و مجموعه چیزهایی که در دنیا وجود داره رو اگر با همدیگه جمع بکنیم یه چیزی داره شکل میگیره به نام جهان جهان گویی یک کلیتیه که تمام اجزا رو در بر میگیره توی دنیای مدرن جهان اون چیزیه که ارجاع داره داده میشه به واقعیت این اصلا یکی از مسائل پارادایم دنیای مدرن اینه که واقعیت‌ها رو استحصا کند که چه بشود که جهان رو بفهمد و استحصا بکند اون چیزی که توی 1953 منتشر میشه و مسئله ویتکنشتاینه و اصلا یک گردش بنیادین در اندیشه مواجهه با جهانه اینه که جهان نه از مجموعه اشیایی که در درونش هم و نه از مجموعه واقعیت هایی که ما میخوایم ازش استحصاب کنیم بلکه جهان چیزی جز زبان نیست ببینید این اون انقلاب یا تحولی که ویتکنشتاین دوم رقم میزنه فارق از این که باهاش موافق باشین یا موافق نماشین یعنی گویی ما تا پیش از اگر اگرچه این ایده سوسو میزد مثلا در لحظاتی با کانت در لحظاتی با در واقع فلسفه جدید بلخص مثلا با اون شاخهای اگز... اگزیستانسیالیش اما هیچ کس گویی به این سراحت و با این در واقع دلیری این موضوع رو مطرح نکرده بود که جهان چیزی جز زبان نیست. ببینید این این خیلی لحظه بنیادی یعنی به یک معنا جهان ما در واقع من اندیشنده یا من در واقع انسان رابطم با اشیا و رابطم با واقعیت ها و رابطم با اون چیزی که باید به درستی و دقت با متدولوژی علمی استخراج بکنم که بشه واقعیت ها رابطه این نیست رابطه رابطه که زبان من ایجاد اگر بیتکننشلاین رو دیگه از این فراتر نبریم یعنی اون چیزی که خود بیتنشن میگه اینجاست اون چیزایی که من داشتم اضافه میکردم کردم پیامت هاش بود اصلا اینجا بحث بیتیکینشلا نیست که حالا مثلا زبان علمی تسلط داره باید بریم سراغ زبان شاعرانی او مسئ این نیست اون ئش اینه که آقا جهان جای جستجو نکنی جهان زبان مست اما این حرف، نمیتونست فارق از این پیامدهایی که بعدا اتفاق میفته نباشد خب اگر جهان من زبان من است و اگر ما در واقع محصول در زبان خودمونی، پس هر چه که توی این وضعیت داره تولید میشه در واقع تفسیر میشه و توضیح میشه و اشکال گفتمانی پیدا میکنه اشکال واقعیم پیدا میکنه دیگه به این معنا بود که مثلا جنبش های بعد برخی از جنبش‌های مثلا را در 1950 به بعد روی این مسئله بسمی کردند که اصلاً من کاری ندارم که واقعیت چیه مسئله اینه که این نظمی که این شکل از زبان رو به وجود آورده داره من رو به استثمار خودش در داره من رو در واقع اصلاً مسئله اینه که من در اقلیت قرار گرفتم من در رنج قرار گرفتم من در... به, به واقعیت ارتباطی ندارم اصلا واقعیت مهم نیستش که معرف چی هست مساله جدی اینه که این سا... سامانه زبانی داره این شکل از مثلا نابرابری یا هر چی... چیز دیگه رو به وجود میاده خب این خیلی تحبول مهم بود این یک نکته دوم اینه که این که در واقع ما میگیم این به تعبیر پیامدهای های این سلطه‌ای ای که زبان علم بر همه حوزه‌ها ها برقرار کرده به معنای نابودی علم نیست به نظرم این کار خیلق در واقع غیر خردمندانه هست مسئله سر اینه که همونطور که یه زمانی انسان فهمید که زمین مرکز عالم نیست و این یک تحولی رو در نظام معرفتی ایجاد کرد اون در واقع یک کتازی و غرور و تکسباری که گفتمان علمی داره ایجاد میکنه همه چیزیست به نظرم این خیلی مهم بود این به معنای این نیست که مثلا از امروز باید علم رو در, در واقع در موازی گفتمانهای دیگر قرار داد بلکه مسئله اینه که از تداخل وظایف علم در حوزه‌های گفتمانی دیگر جلوگیری گیری بکنی. یعنی مسئله سر اینه که اون در واقع چی فضایی که علم میخواد به تسخیر خودش در بیاره توی همه سامانه‌های سخن اینه که موضوع رو بحرانی میکنه توی این فضاست که نوعی از اقلانیت ابزاری معطوف به هدف داره شکلی میگیره و میاد با اون گفتمان علمی که میخواد خودش رو همباره گفتمان در واقع برتری که میتونه با واقعیت ارتباط برقرار کنه جا میزنه بعد این اقلانیت معطوف به هدف و این دیسکورس علمی تو سخن عاشقانه هم پیدا میکنه تو خونر هم باستابش رو پیدا میکنه تو سیاست هم باستابش رو پیدا میکنه تو خانواده هم پیدا و تو دوستی و همه جا به این معنا که چیزم مولانا میگه از غذا سرکنگوین سفراغوزود به این معنا این سخن علمی که اتفاقا باید در محدوده و مرزهای خودش به ما کمک بکنه که مسائل و مسائل خودمون رو حل بکنیم میاد در جای دیگری یک پیامدهایی به همراه میاره که اساساً انواع دیگر اشکال سخن امکان در حقیقت ایستادن روی پای خودشون پیدا نمیکنه و فکر می‌کنم منظورم رو رسوندم جمله آخری نه که به این معناست که شما با یک قلدوری یا در واقع حق به جانبی آلمانهی روبروید که هر کجا و هر آینه در هر زمینی میخواید صحبت بکنید افرادی وجود دارن که سریع بیان بگن که مثلا شواهد تجربی چیه نمیدونم چقدر مثلا این از نظر مثلا سبب شناسی درسته یا درست نیست و به این معنا شما احساس میکنید که علم دیگه داره پاشو از پارادایم های آلمانی خودش حتی به زندگی شخصی ما هم در واقع چیز میکنه وارد میشه و به یه تحبیری هم که مثلا بعدها فوکو و برخی از متفکی یعنی بعد از زمین مصادر نشون دادن شما امروز می‌بینید که از لحظه ای که اون کودک به دنیا میاد و اون مه رو کف پاش میزنن تا لحظه ای که میخواد بمیره توی یک سیستم نظارتی و کنترلی که اتفاقا اون گفتمان ساختتش یعنی اون گفتمانیه که میگه ببینش شواهد تجربیش رو پیدا کن نمیدونم در واقع بسامدش رو کشف کن تا بتونی شناساییش بکنی نه اینکه این نباید باشه و باید با اون مخالفت کرد مسئله سر اینه که آگاهی به این وضعیت به ما این مجال رو میده که برای سخن شاعرانه برای در واقع سخن ادبی و سخن هنری همونطور که در دنیا هم در بعد از 1950 هست اتفاق افتاد فضاهایی جد میشه که اونا بتونن تنفس بکنن و در این تنفس اتفاق هم ما مجالی برای اشکال دیگر گفتگو با سامانه های دیگر زبانی رو داشته باشیم هستیم.